تمام تو روحا و دادن و شم تو برق به سال بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال قحادیان به جمال الحبیب قف ونزل که نیست صبر جمیلم از اشتیاق جمال حکایت شب هجران فروگذاشت به به شکر آن که برفکند فرد روز و سا بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم کشیده به تحریر کارگاه خیار چویار بر سر صلح است و عذر رو توان گذشت ز جور رقیب در همه ها به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ که کس ما باد چومن در پی خیال محاب قتیل عشق تو شد حافظ قریب ولی به خاک ما گذری کن که خون ما تحلات